الحمد الله الله الحمد لله رب العالمين صل الله عليه وسلم سيد الله لا اله الا هو ربنا المستعان الحمد لله رب العالمين صل الله عليه وسلم سيد الله الله وارد یک مثلاقی شدیم که از خیلی محل کلام بوده که اصطلاحاً به اون میگفتن بیع شاق مسررات یا عبل مسررات که تصریه و این بحث تصریه بحث معروفی بوده که این روزی مقداریشو از کلمات ابن قدامه در مرنی خوندیم و توضیحاتی رو در این جرعه عرض کردیم که چطور استخدام به شکل انجام و به این مناسبت متعرض این نقطه شدیم که آیا تدریس با هی یکی یا دو تاست در مثل مسئله بی شات مصراص آیا جزء عیب یا جزء تدریسه که قش باشه و پس کردیم که در میان علما این بحث مطرح شده و این اختلاف برقرار یعنی عده هایی میدونن عده از اون میدونن لکن انصاف قضیه هر از بین تدلیس و بین مسئله عیب تدلیس یک چیزه چیز دیگه است این طور نیست که یکی باشه. که حالا بعدی باشهاش رو مطالب روشن میشه. چون این مسئله ربطی به ما نحنوید داره که مسئله به اصطلاح تدریز باشه یک مقداری راجع به این مسئله توضیح بدیم و چطور یک مسئله که به نظر ما الان مقدر روشنیدی تو بحث هایی بین علمای اسلام در گرفته و خیلی هم به قول معروف جارجنجال این مسئله به راه مسئله شات مسرات ارز کنم که دیروزی مقداری مختصرن گفتیم حالا توضیح بیشتری عرض می کنیم فعلا برای توضیح مطلب یک به اصطلاح یک مقداری از کلمات اهل سنت رو می کنیم دیگر چون سنیا زیاد نیرشن آن به این کتاب که من می فعلا یه ابن محلات از این چاپه یاد دفعیش از صفحه 65 پنج به بعد البته در کتاب در این ابن حض خودش خیار عیب رو هم سنایی میدونه سلاسی نمیدونه کما اینکه که خیار عیب رو در جایی میدونه که شرط سلامت باشه یعنی اگه شرط کرد که سالم باشه و سالم نبود خیار داره و اما اگر شرط نکرد و دید که این عیب داره دیگه خیار عیب داره اما خیار سنائیه بهشون خیار رو سلاتی دیمی برنه. یا رد میکنه یا قبول میکنه عرض و قائد نیست عرض کردیم اگر ما باشیم و قائده عرض باید به یک دیگه دیگری ثابت بشه باید مختزه قائده خیار همینه خیار طبیعت سنائیه جایی اگر میخواد چرا بشه دلیل میخواد هر رو حرفش هم یک ما در اینجا دلیل نداریم تفاوت ما بین صحیح و معید رو دلیل نداریم به در درسی ای در جایی که شخص نکنه کتاب رو خرید شر هم نکرده بعد کتاب معید در یه نظر چاپ نشده الان کتابشون 16-16 در -16 سح و ه قطه با هم یه ش نشدن این کتاب معیده داهشون یه حرف داری یا رد میکن یا قبول تفاوتش نمی‌چینی. بعد در مساله این در صفحه 65 بود در صفحه 66 ها حکم کل و معیب هاشا المصرات فقط مصرات رو خارج میکنه ایشون تصریه رو جزو ایوب گرفته. این همون بحثی که از که عرض کردم یا تصریه جزء عیوب یا تصریه تبریز و رش حیوست یا غشت فه این حکم ها ان و هی ماکان یحلب من اناسل حیوان و های از ها لبونن البته ایشون حیوان داره اینشالله عرض می کنیم ما رو بعد اگر پرستادی شد معلوم نیست که رو به مطلق حیوان سرگرد بده مخصوصا در, در جایی که مراد چون انسان باشه مثلا یک کمیده رو خرید که این ظاهرش اینکه فرشیر ولی که مثلا ازش اتقال کنه برای شیر دادن بعد من شد که نه این چند روز نگرش داشت شیر جمع شد آیا جمعی حیوان حتی بشر رو هم شامل میشه یا نه این خودش یکی ای از محل بست فوجه ده ها قدر روبت ورعه ها رو بستن حتی شمه اللبن شیر جمع شده فلا ما حلبه ها افتود و حله این به اصطلاح پلاحال خلاص ثلاثت ایام این کسی که شاق مسررات در در نهل سنت خیار حیوان ثلاثت ایام ندارن مثل ما اینا خیار حیوان ثلاثت ایام در مسررات دارن نه مطلقن نه اینکه در مطلق حیوان روایات ما در مطلق حیوانه فه انشاءه امسک ولاشه اله و انشاءه رده ها و رده من منتر حدود سه کیلو خورما و لاغوت فقط همین حالا بعد اشون تمسا که چون از کلم ابن حض این و که روشن بشه میگه حتی اگر مثلا دیویست تا بوستر خیلی همه شون مصرحات بودن دیویست دا بوستر و اگر براش رو برد بکنه یک من خورما یکی گوستان رد بکنه یک من خورما مثلا دو پیش شوده استفاده کرده شی شیره دویستو یا شیره یکی میگه فهم نمی کنه یکی باشه دستو باشه ستو باشه دویستو باشه باید همون یک من خورما بله مسراد واحده ازنسین و الفن و اکثر لا یرد دفی کل لالک لا سا واحد واحدا من تن حالا گاهی شده که مثلا یا یک جه که خرما گراد بوده نوع خورمایی در اونجه که گراده خب گاهی اوقات میشه که اصلا خود بوسفند و شیر کمتر ارزش داره. سناشیر گوسان، کولی گوسان ده، فرض کن این من منوخند 2 کیلو خورما خریده. میگه بازم فهم نمی‌کنه. هیچ فکری در ایجاد. سوا امکانش اشراء به کثیری به غلیظ، ولو به عشق یک دهم یک من خورما فرض به به قیمت 300 در صد درام خورما اون خریده فهم نمی‌کنه. بله، بعد یک تفکیر دیگهی دیگه قرار میشه که حالا چون راست پیمانه‌ای نداره، اونم من نمی‌خوام. اون در بله. با میگه که اگر خرید و سه روز بوده رو البته لحظه سه روز توی روایاتشون نیامده توی این تصویه آمدن و تو روایاتشون لم یرده ها بعد و لزمت و عبت علی بود الا منعی آخر غیر تسریه اون وقت روایات همون دروایات معروفی که ما کن در بحثی درود از ابو هره قال قال ابو القاسم علیه السلام صلی اللہ علیه وآلی وسلم من هی که گنده فده همون مسرات اینه و مسرات او مسرات بله اینجا داره فهول فیال سلاثت ایام انشاء ان یومسکه ها ان و انشاء ان یراده ها رده ها رسا ان حالا این لا سمرا هم اهل سنت بحث دارن که یعنی چی؟ خود سمرا یعنی به اصطلاح گندم. و گفته شده یک نوارد گنده، او بعد بی، من سوالاتی می کنم. حالا فعلا فہادا خدران سیون یختازی کل ما قولنا و این چیز یختزی کل ما قولنا چون روایت معروفی کی در کتاب بخاری هست، در کتاب بخاری اینطوره منشتر راغن من مصروات سخت طلبه ها فئن رضی ها امسکا و ها صفیه الحتا ها شاؤ منتن ثلاثه ایام توش نداره تو این روایت بخاری منم عرض کردم تو روایت مشهور اون روایت نسائی بود تو روایت بخاری کلمه ثلاثه ایام نداره و این یک بحثی است که من چند بار عرض کردم اهل سنت دارن تو کتاب‌های که مراد از حدیث درایه اسمش معروفه به بحث زیاد فصغه مثلا در اینجا یک روایت آمده از زبور رم هست توی سلاسته ایام داره توی یکیش نمیده سلاسته ایام آیا از سر مقبوله یا مقبول نیست اون سنده صحیح بود سلاسته ایام داشت این سنده هم صحیح سلاسته ایام نداره اینا به منشونی که قبول میکنه برای اینکه برای شما اون محیط رو من توضیح بدم ببینید چه اوزایی بوده بعد ایشون میگه که روینا خبر المسرات بر منطریق ابن سیرین دو ثابت مولا عبدالرحمن ابن زیب و منکریق محمد ابن زیاد و موسد نیسار و عبی صالح سمان و عمامند منبه و عدر وحب ابن و عرش و مجاهد و عبی اسحاب و, و یزید ابن عبدالرحمن و غیر چکی؟ واقعا چیز غریبیه این روایت رو یک عدل زیادی نقل کردن از ابو حریره و رواه آنها اولا باز طبقه بعدی حماد ابن سلمه داود ابن قیص سهیل ابن صالح معمر اییو حبیب ابن شهید اشان حسان و مالک امام اهل مدینه با خودشون و ابن صوفیان که از بزرگانه و ابیدالله ابن عمر و ابن جوریت و ابن ایه محبوب و مکیه هم زیاد ان ثابت و لیس فقیه معروف مصر هم جعفر هم و هاولا ها الان مسئله اثبات و سوات من هم من, من عمزن همیشه به اقوال بکنیم خیلی عجیب به منوش این خبر خیلی بهتنگیز داره و میشه یه خبری بوده که خیلی محل خیلی عجیبه این واقعا حاضر بسیدان تسارمه که این حیوان زبان اینقدر این, این نقطه محل بحث شده باشه و رواه و انها اولا من لا یحسی هم الا الله طبقات دردی هم لا یحسی هم الا الله فصار نقل کاف و سین و ثواتور لا هو الا محرومون غیر موثر اشاره بردو هنیفه روایات رو با این همه طریق هم با قبول نمی کرده. این اشاره بین شخص میکنه و به حالا یه خود سلفا قدیمند و حدیثن و نر میکنه عبدالله از مسعود و از بخاری نهم میکنه از که کلللو خیلی روشن مثل موروارید مونه و صح ایرم من ابی حریره من فوتیا اضافه برای اینکه ابو حریره نغل کده بوده ولا مخالف لهم آمن از صحابه. و همو قول لیز ویه معروف مصف و مالک مدینه از مالکی اهد قوله و اصحاب مالک اله یکی و همو قول شافعی و احمد نه همبر و اصحاب هم و عبی ثور و ابي ابي ابي ابي مشکل ديو باز بعد میخونم یه جز و اصحاب بن راهوي و ابي سلیمان ابي سلیمان مؤسس مکتب ظاهری داوود نحلي اخاني ایشون مؤسس این مکتب ظاهری است و جمعی از ها اصحابنا. یعنی ظاهری ها همشون تطوعشون اینه و اهد قول ابن علی ليلدا بله لیکن زوفر گفته که از احناف به بالی یرو دا سا امن تر او سا من شعیر او نصف سا من برد. حالا این یک نقطه بوده که در اون زمان در یک استاندار داشته که وقتی میخواستن میزان حساب بکنن بین جو و گندم نیمه حساب میکرن میگفته یا یک سمنی سه از جو یا یک کلو نیم از گندم. در جای گرم هست اخصاص بینجا استاندارد اون زمانه. تعبد نیست ایشو میگه با حد زیادتون رسول الله و تعدن به حدود الهی و قال ابن ابي لیلا فی عهد قوله و ابو یوسف فی عهد قوله يردها غیبت ساع من تمام نه خوده ساع قیمت بود. و هو ایضا خلاف عقله زلال و قال مالک فی عهد قوله یا اد اهل کل بلد اهل اهل کل بلد ساع من اغلب عیشه قوت, قوت غالب به اصطلاح دنبال قوت قالب که ما هم در بحثی داریم قوت غالب باز ایشون میگه و حالا خلاف الله رسول الله و قاله ابو حنیفه و محمد بن حسن شیبانی از کرده شاگرده ایشون امکان اللبن ها حاضرن لم تغییر این شیده که دوشیده کارش رد ها و رده اللبن ولا یرندو ما آها ساعت هم ولا شیعن پشنشو. و شانته و امكان قلع کل لغن اما اگه لبم بخورده لم لب يكن له دوها دیگه نمیتاره رد بخوره یعنی چی یعنی به عبارت اخر ایشون شبیه عیب ای گرفته چون در باب عیب ای ای اینطوریه که اگر ما کنیم در معید دیگه رد نمچین بکنیم قبولش می‌کنیم با عرش جاهاییست که رد ساقط میشه یعنی شد؟ در اصل یعنی چیشون یعنی ابن عابد تحلیل بکنه خود ابن حزم رو عیب گرفته و این خودش اشکال به ابن حزم که این عیب ای نیست. ظاهرا ابو حنیفه هم عیب گرفته. و امکان رد اکل لبر لب لا میكول له رد جو ها. لکن رجع به قیمت العیب راهی سن داره. به قیمت العیب فقط تفاوت ما بینه که مثلا یه گوسالی که قدشمون بزرگی باشه و گوسالی که بعد قدش یافت و کوچیک شد تفاوت ما بینه به گوسنده وارد بگیره. چرا اینجا عرض قائله به قیمت ال ای زاهرش که قائله اینجا را اینکه اینجا شد. و حالا خلافان ظاهران لعب رسول الله هر که در و تمیید وقت نماد میکنن که به اینکه ابو همیته مخالفه در رسول الله میکنه نوزو بالله منوزده که تعدیر ایشان تعدیراتی ایشون میکنه که متکی و نه نگه. و قال ابو یوسف این کاره اد و قیمت ما اکنال قیمت رو بده و یکی بعد قیمت شیر رو بده یعنی به عوض دیگر ابو یوسف گفته نیکه پیغمبران سعی منترم چون در آن زمان این قیمت شیر بوده تعبود نیست به سعی منترم این منظورم بگم میکنم یعنی اگر در این مدت دو روز یا سه روز شیر این حیوان رو خورده بعد معلوم شد که شیر جام تا این واقعا حیوان اینقدر شیر بالاتر اینقدر لبون نیست قیمت اون شیر رو بده من که حتماً ساعل منت‌تر خودم قیمت شیر 3 کیلو خرماز یا 2 کیلو خرماز یا 1 کیلو خرماز این روایت پیغمبر رو هم به واسط ساعل منت‌تر من یه نکته رو جان از بکنید شون بعد این مطلب رو میخوان ازدواجات از ما هم بخوریم و کاتوار از خواب. از دیگر از از ما این کاتوار رو حالا. از هم از از خواب ما این کاتوار دارن که نگفتن ساهم دارن سال می‌دهن. گفتن به اندازه قیمت لوازمی که مصرف کرده، به اندازه او بده حالا ممکنه سال و تن به چیز گویی بیشتر به چیز گویی. ده طیب ما بشه. به مقدار قیمت اون شیری که مصرف کرده. با اون درد بکنه و لکن اینشالله از خواهیم کرد که نقطه ای که از خواب ما دارن غیر از اون نقطه که اهل سنت دارن یعنی تو دیگر رو بازیم بحث شدیم این رو به یک برسون حالا این لکیفش لکیف اینجا مخواهم یک مقداری برای این آشنا بشین با کیفیت استظهاراتشون حتی مقفردشون با حدیث و اینها این براتون روشن بشین ابن حض میگه و یکی من خساد حاضین و قولین جماعت اهل رای اصولاً بین اهل سانت اهل رای دینی هم متهمند که خلاف رسول الله اقدام میکرد انه ما خلاف امر رسول الله و انه لا صلف لهم فی و ما نعلم احداً قاله و و انه خلاف قول ابن مسعود و عبی در صحابه الاخرین هر مخاطب که اینه حرف میشه بشه. حالا اون که دیروز من شون گفتم همیشه آشنا شدن با کیفیت استدلال اهل سنت هر خیلی چون گاری میخواد ما یه مطالب نمیم که بعضی تعجب میمیم که واقعا مثلا ما این حرفا رو بزنم حالا اینجا میخونم برای شون وقتر از او حالا قال ابو محمد که ما را باشه وقتر از او فیدال اعتراضشون به انتعلل و خبر به علله هم مرورت هم قابل اصطلالاتشون رو یعنی احناف یعنی به اصطلاح خودشون فقه کوفه فقه کوفه رو فقه رعی میدار مخالفون در اصول این مطلب مخالف با باقواد کلیج دقصه کنی چون مخالف باقواد رو از رجع میکنه دقصه وقتی گوه باقواد میگنی که این هم این کاری میتوند بعضی تحجیب داره نرمی میکنن یعنی این چون مخالف ب یعنی شیر و دومه ها سا ما باید بگیم به قوائب قوائب اینکه اینجا به خیار ای ثابته تفاوت نه که سا اگر شیرم خورده دیگه رد نمیتونه بکنه عرشبات بده قل نه هز. حالا جعابر نه هستیم حالا اونایی جی نگه این آید کذبتون دروم گفتین <تصحیح> بله اصل من کبار اصول این خودش ایک اصله ازده نه بس هم بستنی اگر ابن حض از روحات مبارکه تدلیس رو می فهمید. نه ای و در تدلیس به خیار سناری می شود مشکل رو برد می گید این همونی درسته بله هوا اصلا مندر اصول که تو بل هوا اصلا منده که بار به اصول بعد چیمون می که شما مثلا این حرفای نامعبود که قهقه مثلا ناقض حضورتشون ابو حنیفه محسنی در های در خصوص نماز ناقضه بود شما بیرون نماز قهره بکنم او توی باطل میشه. او تو نماز قهره کرد. این قهره کردیم هم نماز باطل اینجا هم وضوع مناقض وضوعست در حرف حرفای نامرگوز شما اینا خلاف شریعت اینا خلاف اصله اما این اینجا ما عمله بره باعث بکنیم من نمیداری میخونم برای آشنا دادن شما با محیط رو بله چند تا میخونه حالا من نمیخواب بیره اوناشو بخونم آروم خودشون برهم این که شما با شراب، شما میگید وضو با شراب درسته. شما داخل گروه میگید وضو با شراب درسته. و چند تا رو نگردید حالا بیست. هم شهر بودیم طولانی میشه چر هم داریم برای چون همون لحظه این بهدرس. و سایر تلک از تا ما یعنی امور مشکل، های زیاد، و این مشکلاتی که شما دارید، الاتیه دل مزاحک این حرف خنده‌داره برای شوخی خوبه حرفا که قهره نماز ناقض وضوع بیرون نماز ناقض وضوع, وضوع نیست مثلا یا این حرفی که بعد در اون آخری گفتیم که میشه با شراب مثلا وضوع گرس و اون حالتی و ما به ماییت که بهیم مبرسم مبرسم کسی که چیز میکنه مبرسم کسی که تلسمات میکنه تلسماتو. یا مبرسم کسی که به حالت جنون و سیالات و اوحام نبرداشته اون بسته میگه اشته همه ها به اینها به حرفای خنددار و حرفای آدابی مجانین اشرای تو احکام و مراتم قالو لما لما یقص علیه القائلون به علینا انه ها محسوکو چون نه انه ها این قیاس بکنن جایی دیگه معایل نشدن قیاس نکردن پس فرحیزی این محسوکه ابن حضم خب مخالف قیاس نیست به ما از قیاس باطه بان قیاس نشه خیلی عجیبه که واقعا احناف این نامعود رو نمیش این مشروب میده چقدر در دنیا اسلام که تو با احکام شریعت به یک عجب غریبی بازی میکردن شروع میتونه با چند تا قیاس کشون چرا اونجا قیاس نگه این اونجا قیاس الاسه دید و مرد از هم قادم هو به تحریم فرقا این هو بوده از تیغنبر لیکن نصر شده چرا نصرش چیه نصرش بقاطه که اگر یک سا سه کیلو از خورما به در مقابل شیر هم خورما محکوله هم شیر، این ربا میشه اندازه همیست هم ربا میشه قلنا کذبتون ماه و لبن به تا ولا به تن اصلا اینجا بحث ربا نیست اینجا یک جزایی سه شعاره قرار داده ایشون تعبد گرفته توقیهی گرفته شعاره گفت شما سه کیلو باید خورما بدین حالا ما یک بوست هم باشه ده تا بوست باشه. قیمت اون کمتر از تکیلو باشه بیشتر باشه. اصلا قیمت بوست هم کمتر از تکیلو خورمه باشه. کدر تو ماه و لبنام به تا هم و لابتر و این نماه و تمرون اوجبه و لا علی للبایه این یک جزاست. یک جزای مالیسه. کیفر مالیس چاره قرار داده. مختشون باید این بوده به تعبود صرف این بحثه که شما این ربا مبا نیست این رد علیه مسررات بعد چیز رو میخونیم دیگه صداق و مداغ مثال میذاری که حالا جای اینها نیست جای بحث ما نیست و مراتا قالو هنگر میان من چون واقعا نشدگی به کتاب کتاب احناف پس کتاب احناف پیشون هم بود ماراجیه نکنیم مراجع به همین یکی که نرمی کرده از, از اونها و مراتا قالو اراییتم امکان انما باها منه به مدت تمر مول مد یک چهارم ساعه یعنی به اصطلاح <تصفي> ما <Vortec dunno> الان در فلاسفه ما یک چهارک حالا ما میگن سابقه میزنن یک چهارک حسو گرم جگرن یک چهارکه به قول معروف به مدت از یک چهارک تمر مو چند تا از 850 گرم از هر سال شد چند تا بشه تذکر چند بار اون که الان ما در بعضی از مصادر معاصر اهل ندیدیم ما درونی هم 520 تا 540 گرم معنا کردن ماها پیش خودو هم 710 770 گرم من احتبال دارم هم با سونیا باشه ما احتیاطا زیاد شدیده احتیاط احوال احوال احوال این با 750 گرم نه باید 750 گرم باشه الان خیلی حالا رو برای رو همون 710 تا 750 گرمه انما با آهامینه ها به مدت تمره علیسه طور جواله وساعتر او اگر این امکان لبنه ها كثيرن جدا و قليلن جدا اليس ساع و تن و وزن مرة نصف ساع فلان قلنا نه ما قبول نمیكنی ما هو اوزن عن من اللبن و اما فی افتياح یا به مدة طرف نه فكان ماظا چه لقیمت خود گوسن از قیمت یک ساعت از قهوه کاربروش ایشون یک هم سو ماظا چی شده خرج شده و ما کانل المؤمن ولا مؤمنه الا غلى الله رشيده و اضر ان تكون له من الخيارات من امره پیغمبر فرض این کارو ما این کارو میکنید حالا میخواد به اندازه 1 کیلو خرما باشه یا خرطا یا بیشتر اون مهمی مهم نیست برام این ما اینجا تعبد سرق داریم به اون چیزی که رسول الله فرمیده باز شو میکنه که خود شما هم جایی گفتین که مثلا غرامت میاد گاهی از خود قیمتو اون بیشتر مثال میزنم من دیگه باز اون بحثه فاها هونا بعد میگه که فیحاد هلحماقات حوال اعتراض لا علمتیت منان رسول الله بعد و مرتن قالو اکانها در حکم اذکانت الاغوبات و فلانوال مثل کلان که حرق رحل الغال شد در بعض در, بعض در, بعض در, بعض در کسی که از به اصطلاح به المال دوزی کرد از غمان جنگی قال این کسی که غلول انجام داده در سا خیانت کرده کرد. اون مثلا اون یه چیزی ضرد چیزی از تنها این دزدی دو تو شطوررش که اون خرجین روتر شراب کرد پیدا کرده به من هم اون رو بسودونیم. اینا میگن این حب به هم مثل همینه این نحد احفاامیشه مثل این. اینا منسوخ شده اینا برداشته شده. قلناکذب رو که ما موخازه شیطان <تصفيق> و قلتو مالمی اتقت چیزی شیء من روایات میگه اون روایت که شما در خیانت هست اصلا در اوج باطله شما وقتی این رو با اون بیاش بکنید باعث میکنه وقتی صحبت کردن که دیگه اینا اینا اینا طولانیه که روایات بردوش جعلیه بردوش نه بردوش عمل کردن اصحاب ما باید این رو انجام بدیم و قال بعضوها خیلی واقعا عجیب معلوم میشه که نیشه که اصراری داشته که هوبکیون به ذهن خودش با قووا گیری در می که به نور خودش با هوای جووی در می آمده. به هر نحوی شده این نرم میکنه از در درس نج همینطور نعمل چرا چکی باشه گ این در اول بحثش اسم اول اولطور قاه در مسئله وارد میشد بعد نه اگر به بازتون که هری رو تع می کرد به قاعتت میرسیم س جوی به بعض هم حالا حدیث بود مسترگولفی این حدیثی که در اون وقت متونی داره متون رو شروع میکنه با اصانید یه خیلی طولانیه من نمیخونم که متون و اصانید متعدده این روایت ها رو من فقط برای توراک چون به کلام رسول الله متونش رو میخونم یه اصانیدش رو خودتارش رو میخونم یکیش اینه منشترا شاطر مسراب توی خوب دقیقه بکنید توی این روایت شاطر از ابی هره رن از ابی هره رن نمشده ابل و شاد خیلی از روایات فقط شاده اما تو روایات نیست منشترا شادن مسرمان که دیشون شاده شاید من نمیگونم نمیتونم الان چیز رو نسبت بودن شاید نظر مرگو محقق در شرایقی این هم از رو شاد فقط بعد الهاقه ابل کرده که میخونن شاید نظرش به این سنخه از روایات توی طائفه از روایات شاد تنهاست فرمشتری به خیار این شاعرت ها و هم من لبن اینجا توش لبن داری سلاسه ایام هم نذاره خوب دقیق کنین خیلی این زرافت های مکنی رو این یکی باز دو مرتبه انجمعه ابن عمر تمیمی قال سمع تا عبدالله ابن عمر این روایت عبدالله الله نام ما هم یک معنی ذکر شده فذکرہ و قال ان ردها رد معها مثل او مثل لبنها قمن یعنی خود یعنی همرو بعض راوی که دیگه از ابی حریره عن النبي شاء من تمر لا تمر یعنی را صغرا یعنی گندم گون اینجا مراد گندمه حالا این شاله بعد عرض میکنیم که آیا مراد مطلق گندم یا یه خصوص گندم بعد ارز میکنم باز دو مرتبه و اسانی سا منتعام لا سمرا اونجا تعمه بود اینجا تعمه لا سنرا. این اینم یکی باز دو و با اکثر اسانیم به او حراره خیلی عجیبه ها اکثر اسانی به او خیلی هم عجیبه موتونش اینقدر متعدده منشتر آم شاتن محفلتن اینجا هم شاده فاقوه بلخیاف سلاست ایام اینجا باز لبز سلاسته داره ان رده ها رده ها و رد محه ها ساعن منتعم لا سنرا در کتاب مسلم منشتر آم شاتن مسره فاقوه بلخیاف سلاست ایام فه این رده ها رد محه ها ساعن لا سنرا باز راه دیگه سا ام منتعام لا سمرا باز راه دیگه که من دیگه طریقه شدی اونجا و ردها رد مأها سا و رد مأها سا ام منتعام چیز دیگه نداره باز دو مرتبه ردها و انا ام یه کاسه یک کاسه توش مثلا گندم یا جو بریده به انا ام منتعام توی این دیگه از هیچ چی نداره سن. انا داره. یک کاته مثلا باشه از ما بازید یک در آلو فهادا ازتراب شدید از مشکل این روایت این از که ازتراب شدید داره لگر که ما ادامه بدیم بحث روی که از اجرایب اینه که این همه آسانید و این همه متون و واقعا عجیب ها. خیلی عجیب داره من به نظر در اون زمان خیلی واقع می شده مثلا تو زندگی بود زباعتی باشن مثلا تو شط شیر خوش شیر مهمتر با در تا شیرگاه شاید این همه سوال خیلی عجیبیه یعنی عدد سنگیه اصلاً خیلی لازم ترجمه میگن اون یه عنصر اجتماعی در این همه روایت این هم متون مختلف حالا تعجب بیشترش اینه که ما یک دان روایت از اهل بیت شو اجازه مصروات نداره اینا واسه عجیبه این همه روایت از شاهد متعدد بخاری و مسلم بگیر تا با آخر دیگه از خود اعلی حضرت ما یک روایت واحد در شاط المصرات نداریم اینا باذ عجب از ما حالا چون احادیث اهل سنت با این طول و تفصیل خودی یه اشاره در روایت ما و این منشأ این میشه که منشأ تعجب خب چطور شاط المصرات یا ابل المصرات تو فقه اومده اشاره یه حسی که چطور تو فقه اومده وقتی در روایت ما کلا نیست ما یک حدیث واحد نه در شاط المصرات داشت نه در ابل المصرات اصلا لند تصریح ما تو نداریم خلاص این در هیچ حیوانی از حیوان ها خیلی عجیبایی متونی که همون به شما با این اصانید فرامان و بعدن طرقه بعد از مالت رو گفت لا يحسیهم إللا الله و... خیلی چیز غریبیست عجیب و غریبیست به این جنب بعد ایشان ابن حض وارد میشه همون رو که من احض کردم اگاه خیلی متعارف علمی بوده میگه نه ما میگه روی حجیت حساب میکنیم اون احادیثی که سند ضعیفه می‌ذاریم، که لازم می‌ذاریم می که نا تا یاد اونی که قبول بکنه. بله. آخرش هم کجا اختلاف و اجتناب پیدا شده. و آخر حدش هم همونه، فقط بمونه مسئله طعام داستغرا. اون اشکالی که ایشون داره که لفظ سمرا می واضح نیست. یک صنف از گندمه یا خود گندمه اگر خود گندم باشه یه معنیش اینه که مثلا سا ان من تامشون به گندم میگفتن. از گندم باشه مگر گندم خب خیلی مسئله است که معنی نداره تو باشه لذا ایشان آخرش قبول میکنه که اون سا ان تمره و گندم نباشه و تام باشه بعد از اون بحث مفصلی که ایشان راجع به این مسئله ایشان انجام میده در روایت خودشون کلی هم محسن نیست ایشون بدون نیم بیشتر راجی رو این جد بحث میکنه و اختیار نهاییش این میشه و اون روایاتی که جنبه اجمال داره ایشون تفسیرش میکنه با مثلا اناعون منتعان یعنی اناعیسا این راجب روایات اهل سنت و آشنایی با فقه اهل سنت و اما روایات ما همولا ما قائل بخیار حیوان مطلق تا سرود هستی؟ که خب یه بابی داره که انشالله در محل خودش میخواد حیوان بشه یا میخواد حیوان نشه و هم ما راجع به مسرات راجع به که الان محل کلام ماست ما این مرحوم صاحب جامال احادیث در این جلد بیست در باب خیارات صفحه 135 ببند سر وسائل هم در همین جاست یعنی در همین باب های خیارات یا عیوگ روایت شات مسرات در روایات ما آمده یکیش به ترتیب قدم از ها اقدم از اونها که در مجموعه روایات ما حالا شیعه حتاب به معنی ها در دعا امور اسلامه که از کنی رتوشت به طبقه بین و شیخ صدوقه میانه های اوائل دیمه دوم قرن چهارم سی یک رسول الله از اعمه نغل میکنه کنه انا هونه ها وقال تسریه وقال منشترا شاتن مسررات لقد ادل هم نداره فقط شات فهی خلابتون یعنی خودعتون معلوم میشه در این روایت هم برمان خود آمده نه برمان ای فل یرده ها انشا ادا و یرد و معه ها سا ان منتم سلاست ایه ها رو توش نداره مطولو مستقرد کلم براتو بکن این مطبوع از مجموعه روایاتی که من برسول الله این مصرح آورده این اولین کتاب ما که کلمه مسرح رو داره شادن مسرح اینه دونگومی چیزی که ما داریم در اینجا مرحوم صدوق در معان الاخبار چون یک است که مکرر میشه در کتاب جامع احادیث یک بار یک جاورده به اصناده متقدم در باب کزا اما اینجا در کتاب مرحوم و ساید پیشون از استادش جناب زنجانی است یکی از عمر بن عبد الaziz عبد هم قاسم سلام این قاسم سلام این همینی است اسمش بودی بانن ابو عبی این صاحب رحم عبد مولایی است حقاً میقالند فقها حسابش یه دارت المعاردی است خودشان تقی حساب مکتب مستقل تابعه کسی نیست واقعاً دقیقاً انصافاً چند تا کتاب داری پیش قریب که چون بعدها ابن ابن از ازون نقل کرده کتابش مهجور بود با چاپ شده 500 ساله بسیار کتاب خوبی است کتاب غریب الحدیثش یه مرد ملایه ابو عبید قاسم بن عبدالله یک ابو عبیده داریم یک ابو عبید داریم ایشون ابو, عبید ابو عبیده غیر از ابو عبید درسو معمر بن مصناص او با یکی فرق این ابو عبید قاسم بن سلامه که واقعا هم مرد فوق به اصانید متصله اینجا نوشته به اصانید متصله اما در کتاب هم مثلی شاید نسخ معانی اخبار بکنه به اسناد متصل حالا من برچهرش میدم فی اخبار ندیف اخبار متفرقه این هم بسه ماه ها الان رس اون این شده وقتی میخواهیم یک حدیث و جزو میراسای شیعه همونی در میراسه علمان بامونه مثلا تو معامل اخبار صدوق بورده ما بردشیم بوردیم معامل اخبار صدوق از این کتاب چهار جلبی قریب الحدیث ابو عبید مثلا به با مثال هزار تره که ابو عبید در قریب الحدیث شهر دانه از هزار تره باید کونزه آورده کونزه از هزار تره حساب از هزار وقت طریق خودش هم به ابو عبد محمد نهارون زنجانی همهارم عبد, عبد عبد عزیز نعمر همه این طریقیش ایشان به کتابه الان در کتب علمی ما مثل جامال احادیس فقط همین چندانه حدیثی رو که صدوق از کتاب غریب الحدیث اورده اورده بعضی یه اصفار که خیلی خواهده ایشون اورده سندش هم ضعیفه ایشون صدوق اورده فقط جبران سند میشه انجوار زرد میشه این واقعا هم یک مشکلیه یعنی علما نظر علمی به شما میگم به درحالی این کتابی قبول میکنین یا که کنین که چرا صدو صفحه. یک دو غیون حدیث ابو عبید است معلومه تاریخش معلومه شخص معلومه فقیره اهل سنت مبنایش معلومه حالا صدو به مناسبتی این مقدار حدیثه. شماها الان که میخین جمال احادیث بینی یا کل کتاب ابو عبید رو چند تا <تصفح> خب چند تا داره چه عرضش خاصی داره؟ چرا از چند تا هدیه گرفت ما نمی‌دونیم نه واقع مخلصی است و این ما اخباری آخری که یک جد نوشته اگر بخواد کتاب بگو بگیره داره جدی کتاب ابو کتاب بگو لعنت ما در آخری چه سجینی شد؟ ما در با نقل کتاب کاری الحدیث سه سجینی شد هد اقلش مثلا حالا یه پس این که روایت رو در مصادره ما نیست ربطی هم به ما نداره. مرموم صلوق از کتاب قریب الحدیث ابو عبید گرفته اینجا را خواهد آقا قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم لا تسرو حالا این لا تسرو را بعضی زبط لا تسرو کردن بعضی زبط لا تسرو شوال این اولا باشه بعد ارز میکنم اینجا دو تا داره ایکی ابل و غنم همه رو تبیه برگم هسته رو نیکنه در کتاب وسایل اگه اگر عالی این که وسایل دارن این چاپ جدید رو نگاه میکنند چون در کتاب وسایل چاپ قدیم میشه عله ول بقره بربرند. نگاه میکنید چاپ قدیم میشه. چاپ قدیم شما مراجعه کرده چاپ مرومه های ربانی لا توسع روعه بله در آن چاپقدری جلده جز دوازده جدید اونجلشان میشه. در اون چاپ معروم های ربانی ن نوین لا توسع روه بلول بقره اه؟ آه. چون اینجا من خودم معانر اخبار داشتم نشون مراجعه کنم این چون مراجعه کرده و آدرس به معانی داده پس این میده که نسخه معانر اخبار صدوق مختلفه این نسخه مطبوع لا توسه رول ابل برخنمه منوش در پیش تا وسائل لا توسه رول ابل چون تو اون نسخه برخنم داره و انشالله چون من مجبورم به خاطر بعض از نکاس هر داره بارت ابو و در قریبون حدیثش بخونیم توی غریب الحدیث نداره، بقر نداره. توی غریب الحدیث ابو عبید همین ادل و تو خوب بکن. توی غریب الحدیث ابو عبید همین طور لاتوسه بری ادل بعد از اینکه ابو عبید حدیث نقل میکنه و میگه و تسریعته ادله ادل و البقر برهن. چه لاتی با. وقتی خودش میخواد مثلا بگه قره بقر رو اونجا میاره. در نقل حدیث بقر نیست در جایی که خودش میخواد معنا بکنه یعنی مخواد بگه نظر من پرگوه نمی کنه با اولواشات یکیه خیلی دکست میخواد انصافا حتی یه غال خیلی مردمان زریعه بوده جایی که متن حدیثه بقر رو نه جایی که خودش میخواد استضحاب بکنه بقر رو برده جایی که کلام خودشه یعنی مخواد بگه من پی من مثل اذن و غارانه فرقی در این جهت که علای کتاب ماکان به هر حال من الان نسخه معانی رو نمی‌تونم نسبت بدم چون زارم دو نقل مختلف از نسخه معانی هست نمی‌دونم و من اشته را متراضا به آخر نظره این نسخه اینجا رو ما کمتر خوندیم به بین اهل سنت بعضیش داره به خیر نظرت بعضیش داره به آخر نظرت یه فردا یه کمی فکر بکنید نکته لطیفی از این دو شخصین در میام. از بعدش دلار آخر نظر این بعدی رو بخیر. وایم دا بسیار لطفی دارم در اورانتیا مفهوم این شرط.